قصه پنجم عباس با ستار و مشتی رحیم و میر همزه که خداحافظی کرد و از خاتون آباد آمد بیرون از ظهر زیاد گذشته بود آفتاب پن شده بود روی گندم ها و عباس که میخواست آفتاب چشمش را نزند جلوی پایش را نگاه میکرد و سلانه سلانه میرفت طرف بیل صد قدمی که رفت حس کرد یکی آرام آرام با نفسهای بریده بریده پشت سرش می آید عباس فکر کرد این کیه که دنبالم می کنه. ایستاد و یک دفعه برگشت سگ پشمالو و بزرگی را دید که با دهان باز پشت سرش ایستاده با چشمهای مهربان نگاهش می کند و دم تکان میدهد. اباس عباس با چوبی که دستش بود اشاره کرد و داد زد چخه، چخه، سگ برگشت و به خاتون آباد نگاه کرد و دوباره دم داد. عباس جلو رفت، چند چند گول از موهای سگ ریخته بود و جای زخم بزرگی در گردنش بود. با همه پیری دندانهای محکم و سالمی داشت و با چشمان برراغ و درشت او را نگاه میکرد. عباس گوش سگ را گرفت و سرش را برگردان طرف خاتون آباد و با چوبی که دستش بود زد به پشتش و گفت چخه چخه و راه افتاد صد قدمی که رفت برگشت و دوباره نگاه کرد پشمالو آرام آرام دنبالش میآمد آمد عباس ایستاد سگ هم ایستاد عباس چوب دستیش را تکان داد و داد زد چخه چخه چخه سگ برگشت و چند قدم عقبتر رفت و نشست و عباس را نگاه کرد عباس گفت های زبان بسته چته؟ سگ جلوتر آمد و نشست عباس گفت حالا که از رو نمیری؟ بیا بیا دیگه سگ دوان دوان آمد و دم تکان داد و در چند قدمی عباسی استاد اول با احتیاط نگاهش کرد عباس که خندید سگ پوزش را گذاشت زمین و دمش را تون تون تکان داد و گرد و خاک کرد. عباس جلو رفت و پایش را گذاشت گذاش روی کله سگ و گفت: چی آ؟ نه ترس بگو چی میخوای؟ سگ چشمایش را بست و قرید. عباس گفت: چرا همچی میکنی مردنی؟ سگ دوباره با دمش زمین را شلاخ زد. از پشت دیوار باغ کله یک خاتون آبادی آمد بالا، سگو عباس را نگاه کرد و خندید. عباس گفت، این خرس مردنی مالی کیه؟ خاتون آبادی گفت، «مال ایشکی نیست. عباس گفت، پس هم چی میکنه؟ چشه؟ خاتون آبادی خندید و گفت، دنبال صاحب میگرده. یه سال و چند ماهی که میرهمزه ولش کرده. این بیچاره هم از ولگردی حسرش سر اومده. میخواد خودشو به یه نفر بند بکنه عباس کله سگ را با دو دست گرفت و پرسید میر همزه چرا ولش کرده؟ خاتون آبادی گفت زخمی که شد و دیگه نتونست خوب بدوه دوه ولش کرد عباس گفت چطور شد که زخمی شد؟ خاتون آبادی گفت یه شب چند تا پروسی آمده بودن تو خاتون و میپلکیدن که میر اینو فرستاد سراغشون اونا بی انصافی با غمه و قداره گردنش و پاره کردن و در رفتن عباس گفت میر همزن بیرونش کرد خاتون آبادی گفت آره کس دیگه هم صاحبش نشد سگ روی زمین پهن شده بود و پوزش را برده بود توی خاکها و پلکهایش را بالا کشیده بود عباس را تماشا می کرد که رفته بود توی فکر و خیال خاتون آبادی گفت اگه خوشت میاد ورش دار و ببرش بیل عباس گفت ببرم چه کارش بکنم؟ خاتون آبادی گفت ببرد نگرش دار عباس گفت میترسم سگای بیل راش ندن خاتون آبادی گفت سک ها که راش میدن اگه آدما راش ندادن ولش کن اون وقت خودش برمیگرده و میاد خاتون آباد خندید و سرش را دستید عباس راه افتاد سگ هم بلند شد و راه افتاد عباس ایستاد و داد زد چخه چخه چخه سگ پوزش را گذاشت زمین و ناله کرد. عباس گفت، پاشو، پاشو را بیا رو. کنار به کنار همراه افتادند. به شور که رسیدند چیزی به غروب نمانده بود. عباس روی تخت سنگ بزرگی نشست و دستمالش را باز کرد که چیزی بخورد. سگ خاتون آبادی هم رفت نشست روی یک بلندی و چشم دوخت به بیل. به بیل که نزدیک شدند، خاتون آبادی استاد و با احتیاط روبرویش را نگاه کرد. خود را کشید، پشت سر عباس و غایم شد. عباس گفت، چه تیوون؟ صدای نفس نفس پاپاخ شنیده شد که از روبرو می آمد. عباس گفت، نه غریبه نیست، پاپاخه، کاریم با تو نداره. هر دو استادند و منتظر شدند. پاپاخ آمد و به چند قدمی عباس که رسید ایستاد و با تعجب عباس و خاتون آبادی را نگاه کرد عباس گفت نه ترس این تازه وارد هیچ وقت کاری با تو نداره راه بیافتین یلا چخه چخه پاپاخ برگشت و با سرعت دوید طرف بیل عباس و خاتون آبادی کنار به کنار هم راه افتادند به بیل که رسیدند آفتاب غروب کرده بود سکه بیل ردیف شده بودند روی دیوار باغ اربابی و جلوتر از همه پاپاخ. خاتون آبادی که ردیف سکه را گوش تا گوش نشسته دید، ایستاد و با ترس نگاهشان کرد. عباس گفت، بیا، کاری باید ندارند. خاتون آبادی کنار عباس وارد ده شد. سر کوچه که رسیدند، بز سیاه اسلام آمد جلو و با دقت تازه وارد را، نگاه کرد عباس و خاتون آبادی رفتند کنار استخر و رسیدن جلوی خانه بابا علی که مردها جمع شده بودند دور هم و گپ میزدند. مشی بابا که روی تلی ازمها نشسته بود تا عباس را دید گفت مشی عباس آمد مردها برگشتند و نگاهش کردند مشی جبار گفت این یکی رو نگاه کنین موسرخی گفت سگر سگرو سگر اسماعیل بلند شد آمد جلو و گفت، اینو از کجا گیر بردی عباس؟ عباس رفت پیش مردها، خاتون آبادی هم رفت عباس گفت، اینو از خاتون آباد آوردم عبدالله گفت، نون تو بیل بیال کم بود که یکی رو هم تو آوردی؟ عباس گفت، بلم نکرد، هر کارش کردم، بلم نکرد که نکرد و دنبالم آمد مشتی بابا خم شد و چشمهای خاتون آبادی رو نگاه کرد و گفت این همون نیست که پروسی ها سال گذشته دخلشو در آورده بودن؟ عباس گفت، آره خودشه مشتی بابا گفت، مال میر همزه بود، نه؟ عباس گفت، آره خودشه مشتی بابا گفت، بی خود آوردیش به درده هیچ نمیخوره عبدالله گفت، ولش میکنی توی ده؟ عباس گفت، نه، میبرمش خونه خودم بابا هنی کلش رو از دربچهی چهار دیواری آورد بیرون و گفت اگه عوض این جنازه یه زن از خاتون آباد می آوردی که بیشتر به دردت میخورد مشتی بابا گفت عباس خجالتیه این کارو خالش باید بکنه خودش تنها میتونه بره سکهای از کار افتاده و پیرپاتال رو غور بزنه بیاره تو بید موسرخه گفت خوب شد شبها میبریمش بریمش قبرستان که باشه به مرده گفت باشه تو خودتو قاطی آدما نکن اسمایل گفت و از خوشمزگی نکن مو سرخ خجالت کشید و رفت پشت ای تمها. عبدالله گفت کار بی خودی کردی عباس که این نیمه جان را آوردی مشتی بابا گفت آره بی خود آوردیش عباس گفت گناه که نشده اگه نتونستم نگرش دارم برمیگردونمش خاتون آباد مشتی جبار گفت تازه، مگه پاپاخ و سگای دیگه میذارن این تو بیل بمونه؟ عباس گفت، اونا کاری باهاش ندارن، اگه شماها بذارین اسمایل گفت، حالا را نگاه نکن، چند روز بعد پوستشو میکنن که خدا که تازه رسیده بود، آمد نشست روی ها و گفت عباس، اینم سوقاتی بود که تو آوردی؟ عباس چونباتمه زد کنار مردها و گفت این بدبخت صاحب حسابی گیرش نیومده منو چسبیده ول بابا علی سرش رو از درب چاورت بیرون و گفت: "کد خدا، کد خدا اینا همش از بیسر و سامونیه. بهتر دست به کار بشیم و برای عباس عروسی راه بندازیم. شاید سرش گرم بشه." کد خدا گفت: "ان الله زمستان دست به کار میشیم و یه عروسی مفصل راه میندازیم. و خیره شد به سگ و پرسید: "این مال میرحمزه نیستش؟" عباس گفت: آره خودشه پسر مشی سفر آمد و نشست گنار کت خدا کت خدا گفت زبان بسته پیر شده خیلی هم پیر شده عباس گفت همه دندونش سالمه میبینی؟ پوزه سگ را گرفت بالا و لبهایش را باز کرد و دندانهایش را نشان داد پسر مشتی سفر گفت دندان که دلیل جوانی نمیشه مشتی بابام دندان داره دهنتو واکن و مشتی بابا واکم ببینن چانه مشتی بابا رو گرفت و لبهایش رو باز کرد موسرخه از پشت ایزومها بلند بلند خندید خدا گفت عباس بهتر همین الان با یه گله بفرستیش خاتون آباد مشتی جببار گفت راست میگه عباس حاصله دیدنشو نداریم کتخدا گفت مثل اینکه که خلوز هم شده چجوری نگاه میکنه مشتی جبار گفت معلوم دیگه اگه هوش و حواس حسابی داشت که میرهمزه بیرونش نمی کرد کت خدا گفت به نظرم غیر از خوابیدن کار دیگری ازش بر نیاد مشری جببار گفت خب دیگه از تاب و توان افتاده اسمایل گفت همه این حرفها به کنار تازه خاله میذاره ببریش توی خانه کت خدا گفت آره دیگه سگ نجس رو چجوری راه بده توی خانهش عباس گفت کدام یک از شما سگشو میوره توی خانه که من ببرم؟ و بلند شد. مردها هم بلند شدند و راه افتادند طرف بیرون ده. به کنار دره که رسیدند، پسر مشی سفر گفت یه لگد محکم بزن به کلش و کلکشو بکن. عباس گفت چرا بزنم؟ زبان بسته رو همینجوری بزنم؟ و گوش خاتون آبادی رو گرفت و چند قدم برد چلو و رو به خاتون آباد نگه داشت و گفت چخه، چخه، سک چند قدم رفت و ایستاد عباس داد زد چخه؟ مشتی جببار گفت خیلی رو داره پسر مشی سفر گفت با یه لگد میشه حسابش رسید کتخدا گفت گناه داره زبان بسته را چرا بزنه؟ هوا تاریک شده بود و خاتون آبادی در فاصله صد قدمی ایستاده بود و مردها را نگاه میکرد که اسلام پیدا شد کتخدا گفت مرش اسلام دیر کردی؟ اسلام گفت چه خبر شده که همه اینجا جمع شدین؟ کتخدا گفت عباس رفته خاتون آباد و یه سگ پیر و مردنی با خودش آورده حالا خیال داریم که بیرونش بکنیم اسلام جلوتر آمد و خم شد و خاتون آبادی را نگاه کرد و گفت خیلی زیادم پیر نیست چه خوب نگاه میکنه دندوناشم که سالمه مشتی بابا و مشتی جبار و موسرخو و پسر مشتی سفر یک دفعه بلند شدند و پریدند جلو و نعره کشیدند چخه چخه خاتون آبادی با وحشت خود را انداخت توی تاریکی و بیلی ها زدن زیر خنده <تصفيق> عباس آفتاب نزده از خواب بیدار شد خاله رفته بود بیرون لب استخر که زرف بشوید عباس نهارش را برداشت آمد بیرون. اسلام هم آمده بود بیرون و گاریش رو را روبه راه می کرد. عباس گفت: مشت اسلام خیلی زود بیدار شدی. اسلام گفت: تا صبح خوابم نبرده. عباس گفت: چرا خوابت نبرده؟ اسلام گفت: تا صبح سگا وقت زدن و نذاشتم بخوابم. عباس گفت: مگه خبری شده بود؟ اسلام گفت: نه. دو سه دفعه اومدم و تمام ده را گشتم هیچ خبری نبود ها ردیف شده بودند روی دیوار باغ اربابی و رو به صحرا نشسته بودند و وق میزدند. عباس گفت من که بیدار نشدم خسته بودم و حسابی افتاده بودم اسلام گفت خوش به حالت عباس راهش را گرفت و رفت طرف صحرا از بیل که بیرون آمد آفتاب زد و تپه‌های سفید اطراف شور روشن شد عباس چشمهایش رو دوخت پایین و راه افتاد صد قدمی که رفت حس کرد یکی آرام با نفسهای بریده بریده پشت سرش آید عباس فکر کرد این دیگه کیه که دنبال من میاد ایستاد و فکر کرد و برگشت خاتون آبادی پشت سرش ایستاده بود با چشمهای مهربان و ترسو نگاهش کرد و دم تکان میداد. عباس ایستاد و گفت تو هنوز نرفتی و منتظر منی؟ خاتون آبادی تکان داد و پوزش را به زمین نزدیک کرد عباس جلو رفت و گوشهای خاتون آبادی را چسبید و کلاش را بالا گرفت و چشمهایش را نگاه کرد خاتون آبادی با دم پرپشمش زمین را شلاغ زد و گرد و خاک بلند کرد عباس گفت چی میخوای؟ آخه چی میخوای؟ نمیخوای برگردی؟ میخوای پیش من بمونی؟ به خیالم که از من و ایل خوشت اومده خاتون آبادی سرش را گذاشت زمین و پاهای عباس را لیست زد عباس گفت پاشو پاشو راه بیافت بریم سر کار که دیر شده هر دو پا به پای هم با قدم های به طرف صحرا راه افتادند طرف های غروب آمدن توی بیل کنار باغ اربابی که رسیدند خاتون آبادی ایستاد و با ترس روبرویش را نگاه کرد. عباس گفت راه بیا پیر مرد. صدای نفس نفس پاپاخ شنیده شد که از روبرو آمد و ایستاد. عباس گفت «حل نشو بیا محلش نظر. پاپاخ برگشت و دوباره دوید توی ده. عباس و خاتون آبادی که رسیدند کنار استخر سکهای بیل آمدن جلوی خانه اسلام و تازه وارد را تماشا کردند. عباس گفت بی خود براغ نشی بیا بیا بریم حالا وقت دعوانی است جلو خانه ی بابا علی مردها را دید که نشستن روی ایزمها ها می میکشند و گپ میزنند. مشتی بابا گفت عباس بازم که این فلکتدر را اووردیش مشتی جبار گفت نتونستی ازش دل بکنی؟ موسرخه گفت عباس خیلی دوستش داره عباس سگای پیرو خیلی دوست داره اسماییل پرسید آخه میخوای چه کارش بکنی؟ عباس جلو رفت و گفت میبرمش خانه خودم و نگرش میدارم مشتی بابا گفت حالا که دوستش داری ببر خانه تو نگرش دار عبدالله گفت مشتی بابا مثل اینکه تو خودت هم بدت نمیاد که صاحب یک سگ مردنی باشی اسماعیل گفت اگه میخوای عباس حاضر این جنازه رو بده دست تو عباس ده اصباچه شد و گفت نه به هیچ کس نمیدم مشی جبار گفت حتی به من هم نمیدی؟ عباس گفت حتی به تو هم نمیدم عبدالله گفت به من چی؟ عباس گفت به هیچ کس نمیدم اسماعیل گفت به من هم نمیدی؟ عباس گفت آره به تو هم نمیدم کت خدا که تازه رسیده بود گفت چه خبره دعوا شده؟ بابا علی سرش رو از درب چیه چهار دیواری آورد بیرون و گفت کت خدا عباس نرخ خاتون آبادی را خیلی برده بالا میخواد از این را کار و بکنه موسرخه رفت پشت ایزمها و افتاد به خنده کت خدا گفت عباس به حرف هیچ کس گوش نکن حالا که دوستش داری ببر خانه خودت اسماعیل گفت چی میگی کت خدا؟ بهش بگو بیرونش کنه از بیل بندازدش بیرون عباس گفت حالا دیگه به حرف هیچ کس گوش نمیکنم. حرف هیچ کس را گوش نمیکنم. بابا علی سرش را دوباره از درب چاورد بیرون و گفت: نگفتم کت خدا؟ نگفتم مشتی بابا که باید مواظبش بود؟ عباس برگشت و رفت پیش خاتون آبادی که پشت به مردها ایستاده بود و سکه‌های بیل را نگاه میکرد که کنار سنگ سیاه مرده‌شوری ردیف شده بودند و با مهربانی او را نگاه میکردند. خاله عباس که پشت دیوار ای دود راه انداخته بود و شله گندم میپخت سرش را ورد بالا و با تعجب نگاه کرد و داد زد چه کار می کنی عباس؟ کجا می و با عجله خود را آنور دیوار رساند. قاشق چوبی بزرگی دستش بود که شله را به هم زده بود عباس گفت چیزی نیست؟ این خاتون آبادی را خریدمش خاله گفت چی؟ خریدیش؟ پول دادی و این بد ترکیب را گرفتی؟ عباس گفت نه نه خریدمش یه چیزی از میرهمزه طلبکار بودم که اینو عوضش داد به من خاله گفت تو هم قبولش کردی؟ عباس گفت نه قبولش نکردم فقط ازش خوشم اومد خیلی هم خوشم اومد خاله گفت بیرونش کن بیرونش کن بره عباس گفت بیرونش کنم خاله گفت آره آره بیرونش کن عباس گفت هیچ وقت بیرونش نمیکنم. خاله گفت پس منم برمیگردم حزوان پیش پسرم عباس گفت برگردی حزوان مگه من میزارم. خاله گفت یا جای من یا جای این حیوان عباس گفت اوقات تلخی نکن خاله این بیچاره که نیمده جای تو را بگیره خاله گفت، حالا دیگه خودت میدونی، برو فکراتو بکن. عباس و خاتون آبادی رفتن توی حیات و خاله برگشت آن بر دیوار. هزم تازهی توی اجاق گذاشت که دود غلیز و زیادی تنوره کشید و بالا رفت.